؟ بله بخیفرک که و امتحان هم دارین و سوال می و سوال جواب می و بعد ما و ام ببینیم می خونم نمره می دهد اگر هم بخون ببینین ا dynam حال مکنیم این سوالای سال قبل داری؟ آره سواله سال قبل داری این سال قبل، صالهه قبل می توانیم بیاریم که ببینین چه چجوری سوال می ولی ابوله قضیه غزیه یک کلمه بیشترمی که درástیم ولدیجم <تص> ای بلد باشین هر گیری سوال کنن درست ای بلد نباشین هر گیری سوال کنن بازم خلاص پیفری <تصفيق> ف... که گفتم قبلا توضیح دادن رجوعی مثلا در این کار بگذشت یک کفت نیز جادو جهان را پرامت قفیز به نالی و داد خواست شاه جهاندار پریاد خواست همی گفت هم داستانم به شاه به زخم و به افکندن از فخت و گاف. به فرزند کشتن به بیچید دلم ببیچت. به بیچد دلم زمان تا زمان سردتن بکسلم به دو گفت شاه ای زن آرام همه منکر امروز فرجام گی همه روزبانان درگاه شاه به تا برگرفتند راه همه شهر و برزن به پای آبرند زن فت کنش را به جای آورد به نزدیکی نشان یافتند. به نزدیکی در نشان یافتند. به نزدیکی در نشان یافتند. جهان دیدگان تیز بشراختند کشیدند و از را به راه به خاری ببردند نزدیک شاه به خوشی بپرسید و کردش امید بس ای روز را نیز دادش نوید نوید بابش پاید نووید نو بدان پس به خاری و زخم و بگبند دو تر دخت از او شهریار بلند نشد هیچ خستو به دان داستان نبود شاه فرمای هم داستان بفرمود که از پیش بیرون برید وقتی چاره جوید و افسون برید تو خستو نیاید؟ میانش خستو نیاید؟ آها. تو خستو میانش به عرب ببرید و این دانم آین و فرد ببردند زن را درگاه ببردند زن را ز درگاه شاه به شمشیر گفتند و گفتن از دار دارو چا چون این گفت جازو که من بیگنا چه گویم به این نام چا. به بگفتند با شاه کیم زن چه گفت که هان آخرین داندن در نحب سوداوه فرمود تا رفت پیش ستاره شمرد خوان از بفتاره. خان گفتا که این حرف کودک تو جادو زنند به دیدار و از پشت اهل چون این پاسخ آورد سوداوه باز که نزدیک ایشان جز این است را ازون زین سخن در نهو حضور استشان زین سخن در نهو ز بحر سیاهش نیارند گفت ز بیم صفح فدگه به پیتن همیشیر همیشی بر انجمن کجا زور دارد به هشتا تیب چ چخانت ره آب نی همان لشکر نام صد هزار گریدند از او در صفح کارزار مرانید پایاب او چون بود، مگر دیده همواره پرخون بود. خیلی، بسید، چون تموم نمیشم، بسید قبولا، اختر شماران گفته بودند شاه این بچه ها نه از پشت تو هم و نه از سوگاوی. مطلب سوگاوی اینجاست، میگه که بر این نیز بگذشت، بر این کار بگذشته کپتن نیز جادو جهان را پر آمد قفیز قفیز یعنی پیمانه قفیز نوعی پیمانه است و پیمانه پر شد یعنی مهلتش رسید وقتش رسید یک هفته در حقیقت تیکاهوز دنبال کار تحقیق این بحشها بود و حرف رو که صودابه بود، سودابه آمد و چیز کرد؟ به بله حاله به بود داد خواست داد گفتم به قانون قانونه اصلا زشاه جهاندار فریاد خواست و حالا ببینید چی میگه زن؟ همی گفت هم داستانم ز شاه به زخم و به افکندن از تخت و گاه میگه من حرفی ندارم که منو بزنین یا منو از تخت پایین بیارین یا مثلا از این منصب ملکه بودن محضوب کنین اینا رو حرفی ندارم ولی بچهش کار <تصفح> بچهش؟ همی گفت هم داستانم ز شاه به زخم زخم گفت هم یعنی زربه شد زخم و هنوز به همین معنی در ساز زدن هست زربه ای که نوازنده ساز تار میزنه بهش میگن زخمه یعنی زربه اونی که حالا میگیم زخم بش یعنی دست من زخم شد اونو بهش گفتن ریش میشنست این لغت و سام جد رسته معروف بوده به سام یک زخم یعنی با یک ضربت کار دشمنا رو تموم میکرده یکی به دوفمی نمیرسه سام یک زخم پس زخم یعنی کتک خلو زرد زربه کتک هم ترکی درده این توجه بفرمیم که کتک ترکی به زخم و به افکندن از تخت وگاه گاه که گاه همه همون همه اینا رو میگه من حرفی ندارم فرزند کشتن به پیچت دلم من نراحت هم از این که بچم زمان تا زمان سر زدن بوکسلم دیگه گاغا میخوام خوام خودمو بکشم سرام میخوام از پن جدا کنم گسلیدن گساستن و گسلیدن هر دو معنی جدا کردن کاری کرد حالا شاه میدونه دیگه که قضیه چیه به گفت شاه زن آرام گیر همه منکر امروز پرجام گیر سب کن همه زشتی ها امروز پیدا میشه آخرش میرسه بعدم دستور داده او که برن و از زنک جادو رو پیدا بکنه همه روزبانان درگاه شاه، ها روزبان یعنی نگهوان یعنی خواستار چه معمور همه روزبانان درگاه شاه ها بفرمود تا بر گرفتند راه همه شهر رو برزن به پای آورن زن بدخونش را به جای آورن به جا آوردن هنوز به همین معنی به کار میده میگن شما رو به جا نمیارن بیگه منی میشنسین بیگه به یعنی شاید دیده باشم شما رو ولی درست نمیدونن چی ازی به جا نمیارن یه یعنی همون به جا آوردن که همیشه بوده توی گلستان سعدی هم به همین کرتی میگه که میگه که یکی از پادشاهان محمود غزنوی رو به خواب دید که جمله اجزاء او ریخته بود مگر چشمان که همچنان در چشخونه می‌گردید چشمش مونده بود واقعش اسکلت شد سایر حکما از تعبیر آن فروموندند مگر درویشی که به جای آورد و گفت هنوز نگران است که ملکش با دگراند میگه درویشی فهمید و گفت علت این که چشمش هنوز ناب ناب بوده که ایش میده که هنوز نگران ملک و مادشون. در هر حال به جای آوردن من این شناختنه زن بدکنش به جای آورند یعنی بشنزدن برزن یعنی چیست؟ برزن برزن یعنی محله کوی برزن با همه نه کوی برزن یعنی تحقیقا به نزدیکی اندر نشان یافتن میگه ایش لازم نبود خیلی دور برم، همون نزدیکا نشونش بدی کرده به نزدیکی اندر نشان یافتند، جهان دیدگان چیز بشته آفتند، روشنه بگید کشیدن بدبخصن را به راه به خاری ببردن نزدیک شاه زنکی کشیدن را بردن به خاری خار پیش شاه، اول به خوشی ازش پرسید به خوشی بپرسید و کردش امید بسی روز رانی دادش نوید خب همچین میکنم همچین میکنم همچین بگو انحام بهت میتونم سلام میکنم دیگه نمیگه که زنک حرف نزد میگه اوزان پس به خاری و زخم رو ببند اول به خوشی پرسید بعد به خاری و کتک رو ارز کنم که بند کردن و از این حرف بپردخت از اون شهریار بلند یعنی دست رو که زخم بنده اینا خودش اومد بیرون نشد هیچ خستو به دانداستان خستو یعنی مقر و معترف یعنی کسی که به گناه خودش اقرار کنه. میگه اقرار نکنی کفتن این بچه همال خستو نشد اقرار نکنیم نبود شاه پرمای هم داستان شاه هم با این حرفش مو... یعنی با همه کتک و فلان یا حرفای چی نگفت ولی شاه میدونست که قضیه چیه بفرمود کس پیش بیرون برید بسی چاره جوید و احسون برید چو خستون نیاید میانش به عرب ببرید و این دانه ماهینو فرد میگه ببرید و بپرسید و به بیشتر بازپرسی نه اگر تو گفت نه، بکشید. با عره، دونست میشید. حالا. با عره, عره. عره, عره. که حالا اینکه زن جادو بوده، پاپچه ها ایران جمشید و گفتن که با عره دونیمش کردن. و زکری های پیغمبر رو ولی این داستان رو باید بخونین متحسنه تا نخونین زکری ها رو میگن معروف پیغمبر یهود بود بعد رفت از دست دشمان فرار کرد دشمان ها دنبالش کردن رسید به جایی به جای میگن به جایی اینکه که به خدا پناه ببره یه درختی میونش باز بود که فای درخت منه بگیش درخت هم پناهش داد و این هم اومد یه ذره نکه قباش بیرون بود. مردم آمدن و خب حالا چکاه کنیم و دستتوش نداشتن اینا گفتن که ابلیس به صورت مرد حکیم موقعی آمد و گفت چیه و گفتن بله این قشمای ما این بابا لفتی این درخت رو کنیم و یک ابلیس عردوسر آورد دیدید عردوسر رو دید. دو سر رو داشت دیدیدی که بینده از این طرف. خب و سر هست عردوسر رو آورد و خودش بالای درخت رو بریدن تا پایین گفتن وقتی عره دندانه عره رسید فرقه زکریا خواست فریاد بزنه خطاب آمد از جانب حضرت هفت که در بیر از پیغمبری محضور میشی بله خداست دیگه خداست به هر حال جمشیر رو هم نوشتن که محره زاره این ها جزه شکنجه ها و که مثلا بخوان کشی و انتقام گرفتن و ناخلی در میون اقوامی که فرهنگشون پایینه رایجه دیگه مثلا همین الان تو تیرون لاته میشنوه که میشنوه فقط یه حرفی که میگن خوهر بده مثلا یا با فلان کس را داره اینش معلوم نیست که داره یا نداره اصلا تنها فکریم که به خاطرش نمیرسه اینه که بره ببینه که حقیقتا چند چیزی وجود داره یا نه, نه این ها مالو بی فرهنگیه و موده این کارا که سعی می کردن مثلا آدم ها رو زارخش بکنن ولی خوشبختانه طبیعت وسیله زده اینو گذاشته درد از یه میزانی که بگذره آدم بیهوش میشه و پیش از یه مقداری احساب آدم تحمل نمی درد باید ایش یعنی اون مقصودی که دارن حاصل نمیشه برحال چون خستون نیاید میانش به ارد ببرید و این دانه ماه اینو پر ببردن زن راز درگاه شاه ز شمشیر گفتند و از دار و چاه چون این گفت جادو که من بی گناه چه گویم بدین نام پیشگاه میگه من بی هیچ گناهی که کرده باشم چی بگم در درگاه شاه گفتن با شاه این زن چه گفت جهان آفرین داندن در نور گفت این زن اینجوری میگه و خدا میدونه که حضیر شاه مجبور میشه که چیزی که تا حالا پنهان کرده و نگفته که من میدونم و ستارش شماران گفتن که بچه عمال این و آشکار با. میگه ستارش شماران بیارین و میارن و به سوداغه فرمود تا پیش فرمودن و هنیه دستور دادن اینو چند بار گفتن فرمان از همینه به سوداغه فرمود تا رفت پیش ستار شمار خان گفتار پیش ستار شماران هم گزارش خودتون دادن ولی زن مگه از رو میره که این هر دو فودک جا بوزن هم دیده به دیدار و از پشت آهرمن هم. جواب میده که نه اینا از ترس سیاوشی که نمیکن، میترسن پهلوانه چون این پاسه ها ورسود باز که نزدیک ایشان جز است هست راه اینا چیزی دیگه میدونن زبی مثل فهقتگو پیتن بزرگ نستشان زین سخن در نهوف بحر سیاوش نیارند گفت نیارند یعنی جرعت نمی. مسترش چیه؟ نه یارم؟ راستن یعنی جورت. حالا ماضیه یارستم میشه یارستم یارستی یاراست. مزارش میشه یارم یاری یارت یاری یاری یاری یارم. در اینجا ولی یه فعل دیگه داریم آوردن مازیش میشه آوردم آوردی آورد مزارهش میشه آرم آری آرد درسته؟ حالا اگر مزاره یارستن میشه یارم یاری یارد مزاره آوردن میشه آرم آری آرد اما اگر منفی کنیم هر دوشون میشه نیارم نیاری نیارد آرن رو ما نمیگیم نه اون یه رو میریم برای این که راحتت بشه پس پل مزاره آوردن منفیش میشه نیارم نیاری نیارد پل مزاره یارستن منفیش میشه نیارم نیاری نیارد و ما باید باید چیه؟ از معنی جمله حدس بزنید که این از فعل آوردنه یا از فعل یارسته یک فعل دیگه اینجوری هم داریم تا اونجا که من خبر دارم اون فعل میگم فعلی داریم ماندن ماندن که قدیم متعدی هم بوده لازم هم بوده یعنی ماندن معنی باقی گذاشتنم به کار می رو. ولی حالا نیست به حال حالا نیست مازیش میشه ماند، ماند، دیمان مزارش میشه مانم، مانی، ماند درسته فعل دیگری داریم مانستان مانستان و عنی شبیه بودن می انوزن میگن فلانی مثل ماه میمونه از ماه میمونه یا به ماه میمونه یعنی نشکلی مانستن مازیش میشه مانستن،, مانستن مانستی مانست مزارش میشه مانم مانی ماند اینه ماندن من پیشم هم همه هر میشه بنابراین بعد اینجا بفهمیم که این از فعل ماندن یا از فعل مانستن هیچ ملاکی جز معنی نیست فزوم نستشان زین و سخون در نهو، ز بحر سیاهوش نیارند که جرعت نمی بگن کجا ز بیم سفه ودگو پیلتن، بلرزت همین شیر بر انجامن میگه این پهلوان، پهلوانش که شیر از میلرزه این زن بیچاره، این, این ستار شناس های مفنگی مردنی پرس اونه که نمیگن کجا زور دارد به هشتاد پیل و امزه هشتاد پیل زور داره ببندد چه خواهد راه آب نیل روشنه دیگیم همون لشکر نامور ست هزار گریزند از او در صفه کار دار ست هزار تا لشکر ازش مرانیز پای آب او چون بود بگه منم نمیدونم که حالا باش در افتادم چه بلایی سرم بیاد. ببینید چطور اون عشق یک لحظه تبدیلیشه به کینه و تا کجا میره بعد وقت حرفی با تو حتی حاضر بره بیرون نگه اینو نمیگفته هم برای کسافت دیگه بگه زن بابام چی یخیرانی گرفته بود نمیگه دیگه ولی پایاب مراکب از پای و آب یعنی چیزی؟ از اصلا پاس و آب <تصفح> <تصفح> <تصفح> تا اون قسمتی از دریا رو که آدم که توش میره پاش رو زمینه بهش میگن پایاب تا جایی که غرقه میش از اونجا به بعد میگن پایاب از دست آدم رفت سعدی میگه چو پایابم برفت از در دانستم که دریایی پایاب با. اینجا هم مرادش تا, تا, تا, تا پایاب آدم امن دیگه چیزه یعنی بیمه طلافش نیست پایاب که از دستره بیمه اینه که اپنی بشه میگه مرا نیز پایاب او چون بود یعنی آقابت منم معلوم نیست که با او چه میشه و چجورد میتونم ایمن باشم از اون مگر دیده همباره پرخون بود شاید که همیشتا آخر اون را مجبورشن عشق بریزن خب برد بیشتر از این حرف دا. خوزون استشان. شام یعنی حرفای بیش از این دارن که نمیگن از فرسی ها باش بزن اره دیگه چشم پرخم باشه نیست بله دیگه فرقم يعني... قفته هستم دیگه بگو <تصفيق> یکی دیگه از علمه بسنی میخوند تو به که بردارد از رود نیرا نه دو سره چطی بانه جوزان دو ترهیت برو بالا جوزان که بفرماید افترشناس بفرماید که بفرماید از چه گوید, گوید سفان از که گوید سفان ترا گردم خورد فرزند نی مراهان خودون از تو پیوند نی سفان گرد چنین چونین سرسری بدان بیتی افکنده این داوری زیدیده خوزن زان ببارید آب که بردارد از جرود می راکتا سفر برد گفتار او شد دو جم همی با او به هم گسی که سوداوه را فکر دل بران درد به این ها سی دل چنین گفت کندر, جا... کندر نهان این سخن تجوهین تا بر چه آید بگون ز فخلو همه معبدان را بخان ز سوداوه چندی سخن ها بران چنین گفت معبد به شاه جهان که کدر... درد سففت نماند نهان چه که پیدا کنین دفتگوی بباید زدن سنگ را بر برصبوی که بر هرچند فرزند هست درجمن دل شاه, از ان... دل شاه از اندیشه یابد گذن وزین دفتر شاه هاماوران پرندیشه گشتهی به دیگر کران زهر دو سخون چون برین گونه گشت براتش یکی را بباید بذار چون این از سوگند چفر بلند که بر بیگناهان نیارد گذن بسیار مرسی زنه ای خیریبال نره مرسی. به هیچ نه گریه به گریه شدید که فاتران با, با اون شروع کرد میگیری کرد بعدم هم رو پرست اینجا میگه که شوزان کو او بفرماید این چی؟ جل چیزی که سیاهاش بگیرد جل چیزی که سیاهاش دستور بده این او برمیگرده به سیاهاش به فرمایدم، یعنی دست شوزان کو به بفرماید اخترشناس چه گوید سخن؟ میگی اگه میتونه اخترشناس غیر از اون که اون میگه بگی جزان که فرماید اخترشناس چه گوید سخن؟ و از که جوید سفاست حتما به فرمان اوست و دست برو او رو ایجام کنی. تو را اگر قم خورد پرزند نیست مرا هم فزون از تو فیون نیست میگه اگه تو قصه بچه های که تو دو تا هم به ایچه <تصفيق> اگر تو قصده این بچه های کچکتو نداریم، منم دیگه با تو پیوندی ندارم سخون گر گرفتی چنین سرسری به دانگیتی افکنده این داغری میگه اگر تو ببینید چی میگه میگه اگر تو این قصد سرسری گرفتی با کار ما باشیم با اون دنیا تو من پیش خدا اله اونجا یه خطی بگیرم به دان گیتی افکنده این دا برید زدیده زان زن ببارید آب که برد دارد از رود نیل آفتاب بیگه انقدر گریه کرد که بیش از اون که بتونه اصلا جلو آفتاب و از روی رود نیل بگیرید سپه گفتار او شد دو جمع، سپه جم این جمعراد همین زار بگریز با او به هم گسی که از سودابرا خسته دل، خسته به معنی مجروح و زخمی است اینی که ما حالا بهش میگیم زخمی، زخمی شد، اونان کس در جنگ زخمی شد، این خسته هنوزم در افغانستان نمیگن خست برای, برای وقتی که آدم کار زیاد میکنه یا راه زیاد میره ما میگیم خسته شد نیست نمیگن اونا میگن مانده شد نمیگن خستش. خسته خسته یعنی زخمی گسی که از سوداغرا خسته دل فرام درد به توی وسط دل بالاخره ما که چه زنه کم گریه شدید فلان همچین گسیل مخفف گسیله آه. شما یه اجلسی درمیون میانید اشکال کار اینه مجلله بله که برسته داری کردن خب که هم ناراحت بود اینگه که چانین گفت کندر نهان، این سخون، پجوه تا پرچه آوید بپن میگه که پنهانی ما شروع رو تحقیق داریم آخه نمیشه که بالا خراه پسره یخی زننیکاری گرفته باید به مجازات برسی اگه زنکه داره تو اومد به این میبنده اونم باید به حسابش برسند و این همین جوری اینه که نمیتونونه مرد بعد وقت بذاه که همجور بمونه زننگ پ نش و پسره هم اون برو نمیشه که اینه که میگه پنهانی تحقیق میکنیم ببینیم که به کجا میرسه؟ شون اینگو در نهان این تختون حجومی، حجومیدن این یعنی تحقیق دادن، حجوش کرد، یعنی مهاتر. حجومیم تا برچه آیات ببینیم آخرش ریزش به کجا می‌شه. ز پهلاو همه مغبادن را بخوان. حال همون از که با اللف نسبت میشه پهلوان ااشقانیان رو بهشون میگستند پارت ها می در زنا باستانی اسم اینا هست اینو گفتم که این،, این حرف مال یونانیه و معادل تیه چنگیسی طلب خوزیشه پرساب بعد این سه با هه اغلب بدل میشه مثلا میسره شده مهر میتراقاتی جمعی نیزم نیست را شده محر پرسه و کفتن در زبانه باستانی لام نیست رش به لام بدل شده سه به بدل شده شده پلحا و پلحا به قاعده قلبه میدونید که مردم دو تا هر مطفلو همه اگر که خیلی رادتون نباشید زبانتون نگرده پس پیش میکنند گفلو میگن قل نرخو میگن نه مثلا. حالا شما خیال میکنید که مردم بی سواد این کار میکنند راستان هست مردم بی سواد این کار میکنند اما هزاران سال که مردم چیز سواد نداشتم که و این کار بسیار شده فردوسی تو چهانانه کت با بارها آورده شد کت کفت شده کفت و با گرفت قافیه کفت منبالی قاعده های زبون فارسیست پهلاو شده پهلاو پهلاوان یعنی چون اینا تیرانداز بودن و شجاع بودن و اشایر بودن دیگه اشایری هم الانش یه آدم اشایری که تو این زندگی که این زندگی میکنه مثلا 30 سال شه شیش دمه رو میتونه با یه دست بذاره تو جیبش قبی و قرص و و پهلوانه نیگه کارت تیراندازی بوده و جنگاوری این است که پهلا و معنی آدم شجاع و پهلوان و جنگاور به کار دفته و پهلوان ازش داختن یعنی کسی که در شهر هم دور آور بود و گرنگ کلو مثل قوم پابت اما اینجا که میگزه پهلو همه موبدان را بخوان پهلو به معنی شهره اینجا پهلو یعنی شهر موبدان را از شهر خواست از اصول هم معنی شهر هم قلب قلب نید قلب یعنی پشت و پیش کردن تلها شده پهلو قلب قلب یعنی پس پیش کردن نه معنی قلب هل هاو هل هاو شده فهلاو این لامهش بدل شد. این قاعده رو بهش میگن قلب برای اینکه یه معنی قلب میدونید که پسی پیش کردنه قاعده رو میگن؟ بار. بار. قاعده قلب پس تو چیزم بس, بس مثلا کسی یه چیزی رو عوض میکنه بهش میگن قلب کرده؟ بله، پول دروزی رو میگن پول قلب تقلب از همینه، قلابی از همینه بله ز پهلا و همه موبدان را بخوان موبد رو مثل این که قبلا گفتن بوده موپت یعنی رئیس موخان بوده موبد ز پهلا و همه موبدان را بخوان ز سودا به چندی سخونها بران اینا حد اقلش این بوده که اینا آخوند دین زردو شدن دیگه ولی حد اقل این بوده ببینید اینکه که حالا شما ببینین که این ها مثلا اینقدر نفوذ دارن و اینقدر ریشه دارن بعد فکر کنید چطوری قالب مردم در خونده و فهمیده از اینا بیزارن ولی اینا اینقدر نفوذ دارن دلیلش اینه که در همه دنیا اینو فکر نکنید که مخصوص مسلمونی یا واسه شیعه یا واسه من فلامه ابدا در همه دنیا هزاران سال مثلا هزار سال تنها آدمای سواددار تو جامعه بود من درس میکنه اولا بعد کسانی که یخ به یه خود سواد اتیاج داشتن مثلا شاها میخواسته بشه وزیر میخواسته بشه دبیر میخواسته بشه خلاصه با حساب و کتاب و سواد این هایتش باید میرفتی که آخون درس میکنه یعنی آخون در این حال معلم در دربار قاجار یه نفر بود شخصی آخوندی اسمش حاج ملا باشی بود ملا باشی یعنی رئیس ملا های دربار یه امتی آدم زیر بودن که اینا باید شازده ها و اینا بودن بنابرای تمام آدمایی که تو جامعه درس میخوندن یک سرچشمه درس درست خوندن بیشتر نبود اونم آخونده بود همه این دانشگاه های فرنگی هم از مرسای آخوندی در اومده اید گفتم براتون سوربون یعنی محل اجتماع طلبه ها دانشگاه معروف پاریس، سوربون یعنی محل اجتماع طلاب علوم دینی. شما در آکسفورد یا کمبریج اگر رفته باشید دیدی درینم نرفته باشید ان شاء الله برید ببینید دیدنی خیلی چیزی به نام دانشگاه اصلا وجود نداره. شما هیچ مؤسسه هیچ جایی نام دانشگاه جایی اینجوری به نام دانشگاه هم نیستش که بیستی تا کالج که این کالج‌ها برای خودتون دورخمسه اخوند یعنی حجره درن و به اتاق میدن و اتاق غذاخوری خوری دارن و اتاق نشستن و روز نمیخوندن اینا دارن کتابخونه خونه دارن و هر دانشجویم هم توی که از این کاریج حجره داره که میشه از با اون کاریج فلو با اون میشه بعد صبح که میشه اینا بلند میشن دیپارتمنت های مختلف هست در شهر بعضی از این دیپارتمنت هم تو خود کاریج هست بعضی اصلا چیز جدا داره، ساختمون جدا داری. این میره تو دیپارتمنت افسلکاری، اون کی میره تو دیپارتمنت فلسفه، اون کی میره تو دیپارتمنت اقتصاد، اون کی میره تو دیپارتمنت اله. اون کی میره مرکز تپ میخونه، شب که شد میان تو روزرش آخر سوالم که اینا امتحانش دادن، امتحانم آخوندیه. یعنی یه استاد یه مشکلی مشتمند. سیستم تیوتریال داشت. باشه. این یه <تصفيق> پوستشو میکنید حتی اکثر دوتا و اگر یه استادی مطالبش برای اده زیادی قابل توجه باشه بخوان گوش کنند سمینار میذارند برای سمینار هم لازم دانشجو بیاد هر کسی تو شهر باشه برنامه سمینار ها منشر میشه میان تو سمینار دهندم هم لازم نیست حتما استاد دانشگاه باشه از رجال از اشخاص مخلص دعوت میکنی کسانی که اطلاع دارن از خلان جنرال نمیدونم که میاد تو سخنه ولی شاگرده زیر نظر اون استاد یک شاگرد و آخر تر و یه پیپر بینیمیزه ترم هم هشت هفته بیشتر نیست وسط در می چهار هفته تعطیله ولی وقت کار شاگرد و استاد هر دو اون تحتیله که تا خونه شب تا صبح 24 ساعت تا خونه اکبال بازه و دانشو باید بره جون بکنه و پیپر بینیم سویده استاد استاد هم اون دور از که شاید نداره میری دنبال تحقیق کار خودش اگه مثلا فرض کنه استاد فارسیه حتما سعی میکنه سفر بده تا ایران آخرین کتاب رو ببینه در تماس باشه با جریانات عددی اینا برگرده مثل ماهان منی کنم که، اگه نمیدونم اطلاع شیمی هرچی هست میدونی دنبال کار خودش اون وقت آخر تل باره این بچه دو خط می نیسته که این دانشجو اگر, اگر نه که نه میگه می که تو حالا مثلا عوض کنی که چکا کنی اگر قبول شده باشه می نیمیسته بله این بچه ما زیر من دست منو این درس من خوند و خوبه یا خیلی خوبه یا گزرمده این درس رو میگه بسته بس این کاغذی که میدن اینا میشه مدرک تحصیلی این آقا وقتی هم که تحصیلش تموم شد توی یه قبایدی داره مثلا چند باید بگیرش با کنه که من نمیدونن بعد دیپلوم شدن در همون کالج بهش میدن فقط یه اداره مرکزی داره که تمام این مدرک اینا اونجا جمع میشه و بعد اسناد اینا رو چیز میکنه و همین یه موس کالج. که شما تو این کالج که هستین ردیق و قلدستی بود تو حاجر ممکن رشدشت به کلی بارشت شما افتلاف کرده شد قبل از اینه که هنوز این سیستم آخوندی به این صورت نگهداری شدید و مال ما اشکالش اینه که اینا از 300 سال پیش شروع کردن کشتم دادن و مردم با آتیش سزوندن و اونا هرچی خواستن کردن و نمیدونم بالاخره نشدود بهش گرفتن و خلاص سیستم جدید علم آمد مال ما نه حالا ما مجبور شدیم این سیستم جدید رو وارد بکنیم از پنجا ست سال پیش ببینم که میگن رزاشا البته چیزی به نام دانشگاه تحسیل کرد در سال 1313 اما پیش از رزاشا دانشکرده هو وجود داشت دانشکرده تب وجود داشت دانشکرده عربیات علوم یعنی دستگاه تربیت معلم وجود داشت مد که شاورزی وجود داشت و اینها رو جمع کردند شد دانشگاه یه قسمتی از اینا حتی پیش از مد سیاسی که پایه دانشکده حقوق قرار گرفت پیش از مشرکت هم به وجود اومد. مسئله. خیلی قدیم و ولی به هر حالی 100 سال استمثل سر ده سالس ما این علوم رو وارد کردیم. در هر چه مص آخومده صورت خودش اونجا باقی که هنوزم هست می دینیم. به هنوزم از گرفتاری ها یکی این است که میخوان فیضیه رو با دانشگاه آشتی بدن خب نمیشه که هرچم احتامتالا کردن نشده و هر حال غلط این است که اگر میبینید که شاه میگه موودان بیان ولی اینکه که کسی دانشمند تر از تو دانشمندی غیر از اونا وجود نداشته این که این ها رو صدا زه و همه موودان را بخواند زه سودا و چند بران. این گفت موبت به شاه جهان که درد سپه بعد نامد نه چه خواهی که پیدا کنی گفت و گویش زدن سنگ را بر صبوع سنگ رو به صبوع زدن سنگی بزنن به کوزه چه میشه کوزه میش کنه یعنی آخرین چاره رو چی کردن به آخرین چاره دست زدن خوزه؟ آره، سبوی اصلا معنی دیگه نمیده، پسرم سبو یعنی خوزه اما سنگ رو به سبو بزنی، ترم افطلاحه، ایدیومه چرا که هر چند فرزند، هست ترجمند، دلشاه از اندیشه یا آقد میگه پادچاه اداره کننده کل منبکته اگه واقعا این پادشاه های درستم باشید درستم هست هم. مسئولیت همه منبکت با اون دلش باید فارغ باشه بکنه به کار منبکت برسه بنابراین هر چقدر فرزندش بر او اردمند باشه دل پادشاه از اندیشه، از فکر بی خود صدمه میبینه و نمیتونه به کار منبکت برسه خوزین دختر شاه هاماقران پر اندیشه گشتی به دیگرکران میگه از طرف پسرت از یه طرف این دختر شاه همهوران و اینا پدرتر تو دروردن و تو تو باید دل فارق باشه که به کار خودت برسی زهر دو سخون چون بر این گونه گشت بر آتش یکی را به باید بشن میگه وقتی که از اون دوتا دوتا کیه؟ سیاهش از یه طرف است سود آبا هم میگه وقتی سخن میونه این دوتا به این ترتیب گذشت نه این حرف رو, رو قبول کرد نه اون حرف این رو یکیشون بعد بره ات آتش بزید بره سه البته سوداغه چون هم میدونسته گناهگاره و هم اینکه که اگه میرفته میسوخته میگه که من که چیزی ندارم من بچم مورده من ف... ادعای ندارم او باید به گخی ننه نگیره، از آتکش یکیش احتمالاً انداختن ابراهیم و آتشم به همین دلیل باشه و یکی دیگرش این بوده که میخوابوندن کسی رو که باید توگندو خوده و سور به گداخته میگیدن روی سینگه همشون و معتقد بودن اون کسی که این گناهه صدنه نمیدونه البته بنده این رو بگم در دن من خودم حالا بی گناه گناهکار و فلان که حالا اون که به کنار خود بنده در پاکستان به چشم خودم دیدم که شب قاط پاکستانی‌ها میمدن و سینه می‌زدن و زنجیر می‌زدن و شیه هاشون سینه زیادی می‌زدن به طور که از حال عادی خارج می‌شدن بعد یه چیزی مثل جول روی آب، درست کرده بودن و انزه طول این دوتایی داشت پناهش توش پر آتش باید آتش هم باید می زدن که سیانش باشه بعد که کاملا به شروع می آدن از این آتش را دوش باشه پنجاه مفره بلا بود دردیش های قادری و نرخندی و کردستون هم که شنیدید پیلمش هم حتی گرفتن که اینا سیخ از اینواره دهنش می یا مثلا جریان برق یک دارم چیز رو تو دهنش تحصیلیم این چجوریه چیه من نمیدونم حتما نپرسیم بند فالگیر و طالبین و رحمال و اصلا نیستم هیچ خبر ندارم و هیچ نمیدونم چه این چیزی میشه یا نمیشه خودم ها ندیدم هم این فیلمش هست و به حد شیاریست اون پاکستانی که خودم دیدم. ارز کنم که یکی از آزمایش هم که گفتن خوردن یک آب گوگردی بدتامه خیلی بدی موده که اینه میدادن بخوره شخص زوگن خوردن میدادن اینو بخوره و معتقد بودن که اگه کسی گناهکار باشه حالش به با هم میخوره و با بالا میاره حالش بعد میشه و اگر کسی بیگناه باشه تحمل این آقا می کنم سوگند خوردن ور بهش می گنم و یکی از انواع ور همین گذشتن از آتشی که به تفصیل اینجا در داستان سیاوش بعد خواهیم دید. ولی اون مقاله رو شما خواهش می کنم و خواهش می که تکثیر بکنین به دوستان بدین که بخونن و بدینن ضایدان بعد سوال داشت شما سوال ها اصلا چیزا میات بود چنین است سوگند چرخ بلند که بر گناهان نیات گزند نیات گزند جنگنده صدابر را پیش قام زبد با سی اوغشتو گفتن نشان سرانجام گفت سرانجام گفت ای من از هر نگردد دل من نروشن روان مگر کاتش تیز پیدا کند گنف کرده را زود رسوا کند چون این پاسخا و سودا به پیش که من راست گویم به گفتار پیش. پیش پگنده نمودم دو کودک به شاه از این بیشتر کس نبیند گناه. کنا سیا را کرد باید درست که این بد نکرد و تبایی نگست سیا را گفت شاق زمین که رأیت چه باشد کنون اندرین سیاهوش کنین گفت با شهریار که از مرازین سخون گشت کار. اگر کوه آتش بود کوه آتش اگر کوه آتش بود بسپرم از این نیک است از این نیک خواهر است اگر بگذرم پرندیشه شد جان کابوس کیز پرزند رو تو نیک پی. که این دو یکی شود نابکار از که داشت رویوش کرا پیش بیرون شود بیش, بیش. بیش بیرون شود کار ناوکار همان به که این دشت گفتار گفتار دل بشویم کنم چارهی ای دل گسل. چه گفتن سپهدار نیکوسخون که با بدلی شهریاری مکن؟ بسیار اولا این تایی بیت آخر زرب المثلی چه گفتن سپهدار نیکو سخون که با بدلی شهریاری مکن؟ میگه پادشاهی و ترسویی با هم جور در نمیاد بدل یعنی ترسوی و چون قدیم روی این دالان نقطه میذاشتن یعنی زال میخوندنش و من قاعده دال و ظال رو بعد خواهم گفت الان حالشو ندیرم بگم بددل روی نقطه میذاشتن بزدل میذاشتن بعد کم کم میذیبینیم سه دوره قاجار فکر کردن که این بوزدله و بوز حیوان ترسوی ابدان. نیست در ادب فارسی، مرق دل آمده، یعنی ترس. ماکیان، مرق خونه ای، ترسون هست همینجا در انگلیسی هم کسی رو بخوان تغییرش کنن، مثلا زنها رو مثل که بخوان تغییر کنن، یکن مرق ولی بوزدل معنی همون بددل با بددلی شهریاری مکان، یعنی پادشاهی با ترسوندن دوزن نمیاد و آخرین و روشندترین هم آخرین شاه ایران بود متاسفانه چون شجاعت گرفتن تصمیم در موارد قهط ایران نداشت چند بار تاج تفجیل بشترد در دفعه آخر اینی که برای همیشین بشترد اینه که میگه چه گفتان صفه‌دار نی‌کوب سخن که با بددلی شهریاری مکنن اما میگه بعد از اینکه که با مویدان مشورت کرد و گفتن بیگه چاره ای نیست باید سنگو به سبو زد باید قسم بخورد یکی از این از آتیش بگذارد جهاندار سوداغه را پیش خان زبت با سیاه به گفتن نشان نشون رو بروی هم سرانجام گفت ایمن از هر دوان نگردد دلمه نر روشن روان یه ایمن داریم یه ایمن داریم این دوتا رو با هم رو هم اصل کلمه ایم هردو عربیه. اصل کلمه ایم بوده آمن. آمن از مستر امن. امن و امان نه اون آمینه. نه این اون. اصلا. این اسم فایل از مستر امن یعنی در امن بودن، سیف بودن به خود شما. در زبان فارسی یه ای داریم نام قاعده‌ی اماله. ببخشید که اسمشی قضیبی قضیبیتیه، یه وجه خب، یکی بازم. اماله این در فارسی، که بعض الف ها رو به یه تبدیل می‌کنه. مثلا در زبن عربی ما صلیح نداریم مثلا. جهیز نداری، سلاح داریم و جهاز داریم حسیب نداریم، حساب هس... داریم کتیب نداریم، کتاب داریم عتیب نداریم، اتاب داریم اینا همه رو ما در فارسی ورشتیم الف شو یه تبدیل کردیم این کلمات بشون میگن ممال میگن حسیب ممال حساب و این قاعده هم میگن اماله اماله, اماله اون اون اماله اماله چرا فرمون چه رفتی داره برای اینکه شما میل نمیفرمین با دهن از اون بر با میداریم میل کنیم <تصفيق> این با. یعنی باداره به میل کردن چیزی. باء اولسته با ممالش میشه 아멘 아멘 ممالش میشه ایمن یعنی در عربی 아멘 هست فقط این در فارسی شده ایمه زمانی عاشق اون این درست یایمن هم داریم ایمن این سمت راست یمین یعنی دست راست عیمن یعنی تحصیل، تحصی راست. و چون اونم خیلی در ادب فارسی آمده من حرف رو گفتم برای که بیشتر این کتابی که مردم میکنن، حافظه و در حافظ وادی عیمن آمده یعنی بیاقوم سمت راست و در قصه موسی آمده کلمه وادی عیمن مال قرآنه درست از قرآن آمده شعر حافظ و مربوطه به قصه موسا از اونجایی که یکی زنش در زادن گرفت هواد درد بود بارونم میامد، آمد زنش داشت می و این ناراحت بود خیلی و نگاه کردیدش که برق نوری از یک طرفی میاد، فکر کرد که شاید آتشی اونجا باشه به زنش گفت شما صرف کنی اینجا شما باشید من برم اونجا بلکه آتشی بر شما بیارم و رفت و بعد می دونید که دید که آتشی کار نیست درخت سبز و نوری از که اون درخت میاد بیرون و بهش گفتن کفشاتو رو تو و در حضور حضرت حقی و همونجا خداوند تبارک و تعالی خلعت پیغمبری رو به موسا مرحمت کرد و همونجا اصاش و انداخ زمین موسا و اجده ها شد و بعد رو پروسر آقا قرآن. البته خداوند تبارک و تعالی خیلی هم موقع مناسبی رو برای منسید گردن موساد پیغمبری انتخاب پرمیده بود نه موقعی زن آدم بره میزده وقت آتیش بیر زنه که بیچاره گرم شه <تصفيق> بله حال وادی عیمن وادی عیمن چون در قرآن آمده از اونجا آمده شعر حافظ این از که خیلی زیاد هست اون عیمن رو با این ایمه اشتباه نکنید حافظ میگه زاتش وافی ایمن نمنم خورم و بس موسی اینجا امید قبست میاد قبست هم اصطلاح مال خورم امینه مال خورم با امین امین صفته یعنی کسی که داره همانته امین یعنی آدم خاطر جمعه از, از, از ایمنی از نه, نه. از امنی از ام. امین ظاهرا رفتش اصلا عربی نیست مثل این که از سوریانی و اینا میاد ایمان شده؟ ایمانم عنوانی اعتقاد داشتن و عقیلی داشتن که با کده از این جمع شدن آدم وقتی ایمان داشته شویه ای چیز ای راحتی که میره بهشت بله. خب میگه من از تیش کدوم شما ها ایمن نیستم حالا مرد پسرش سا، بلی زنک از بست چیز کرده چون این سرنجا گفت ایمن از هر دوام نگر دل من گفت دل من از شما دو تا آسوده نمیشه روان روشنم هم از شما آسوده نمیشه مگر کاتش آتش تیز پیدا کنه جز اینکه آتش گناهکارو نشون بده ما که آتش تیز پیدا کند، گنه کرده را زود رست با کنید من ناراحتم از شما هم خاطرم جهن نیست آتش باید چون این پاسه ها و سودا به پیش که من راست, راست رویم به گفتارخش یا راست گویم به گفتارش. حضوم میشه سودابه میگه من که دروغی ندارم من بچه ها نشان کن بدن بچه که انداختان میگه دشت زرجین آز ندارم چون این پاسه هاورد سودابه پیش که من راستویم به گفتارهیش فکنده نموده دو خودک به شاه فکنده همون انداختست دیگه میگن بچه انداخت افکندن هم دیگه یعنی بچه افتاده رو بچه سخت شده رو دوتا به شاه دادن از این بیشتر کس نبیند گناه یکی گناهی بالاتر از این نیست که دوست بچه بی گناه رو باعث سختشون بشه سیا را کرد باید درست که این بد نکرد و تباهی نجرد درست کردن یعنی ثابت کردن میگه سیاوش باید ثابت بکنه که این کار نکرده من که پچه نشونده نشون بده سیاوش باید که سیاوش را کرد باید درست که این بد نکرد و تباهی نجست میگه اون باید ثابت کنه که این کار بد نکرده و این تباهی رو نجسته سیاوش را گفت شاه زمین که رایت چه باشد خانونم داریم میگه پاسچان گفت که نظر تو در این باب چیه؟ اون زنک پر روه ماشالله ها سیاوش بیچاره سیاوش رو نیم گفت با شهریار که دوزخ من را از این سخن گشت خواهر میگه این حرف و این توحمتی که من زدی جهنم در نظر من آسان یعنی از دوزخ برای من بدتر و دوزخ از این حرف در نظر من خوار شد یعنی هیچ شد که دوزخ مراز این سخن گشت خوار درستم هست و آدمی که هیچ گناهی نکرده در عمرش گناه نکرده به یه چنین گرفتار بشه سیاقش چنین گفت با شهریار که دوزخ مراز این سخن گشت خوار اگر کوه آتش بود بسپرند میگه اگر کوه آتش باشه سپردن سپاردن یعنی رد شدن ره سپار راه سپر لابوت شنیدید دیگه میگه یه کوه آتش باشه ازش رد میشه از این خار است اگر بگذرم یعنی خیلی زشته اگر من از این حرف بگذرم و نکنم این کاره. یعنی به مراتب گذشتن از کوه آتش برای من آسان تا از این حرف بگذرم حالا کابوس باز دوباره گرفتار ناراحتیه اولاً میدونو که یکی از این دوتا دروغ میگه دیگه تشمت خب پرده که قسم کنن ثابت میشه میگه خب من حالا پردا پس فردا ثابت میشه که یا زنم وزش خراب یا پسرم یکی از این دوتا اون وقت چی دیگه منو پادشاه خطاب میکنیم یا آب رو برای من میمونی در این سلطه نه بسید شد جان کابوسی که ز فرزند و سود آقای نیک به که از این دو یکی گر شود ناوکار از این پست که خاند مراش احریار اگر یکی از این دو تا ناوکار بشه که میشه حتماً واکیه من می‌کنه به ایشاه که من دیگه حیثیت ندارم از این پس که مرا شخص یاد چون فرزند و زن باشد و جوش مغز چرا بیش بیرون شد. مغزش داشته داغ می‌شود بیگه وقتی مسئله زن باشه مسئله بچه باشه و مغز آدم به جوش بیاد که میتونه به کار زندگی رسته کار نغز یعنی کار خوب و عالی دیگه وقتی که زن باشه و فرزند باشه و جنوشش مرزم باشه یعنی ناراحتی شدیدن باشه چه کسی میتونه کار درست دیگه بکنه همون به که از این رشت گفتار دل بشویم کنم چاره دل بسه دیگه بهتر است که من بالاخره مرگ یه دفعه شیون یه دفعه این شک و تردید و بدبختی رو پاکش کنم. دلمو از این از این کار بشو و چاره دل گسل بکنم. گسلیدن گفتن یعنی پاک یعنی فکری بکنن که دل من از این از این از این خیال بعد از این گرفتاری گسسته بشه. چه گفتن سبهدار نیبوخادنصر که با بفتلی شهریاری میگفتن میگه اون سفهدار خیلی خوب گفته بود که با پرسویی پادشاهی نکن و به هر حال مطلب رو روشن کن در رجی چیز که آتش میکنه به دستور آتش پراهم کنه بخون خیوم عیون اوراد از دست صد کاروان عیونان به دیزم کشیدن به ایزوم تبدیل شدند همه شتر ایران به دیزم شدند به صد کاروان و سرس و خمون همین ایزوم اور پرخاش جفت جو، پرخاش, پرخاش، جول نپادند دیزم دو کوه گلن شمارش کردند شمارش شمارش شمارش گذشت در چون و چرد ز از دو فرسنگ هر قدمی چون این جوز باید بلا را کلید همین خاص دیدن در راستی ذکار زن آید همین همه خواستی چون این داستان سر به سر بشنبی به آید تو را به زن نگروی نهادن بر دشت و درشت ایزان دو کوه جهانی نظاره شد و همگروب. شده نظاره شده همگروب تو همست که اینک لازم دارید <تصفيق> جهانی نظاره شده همگروب گذر بود چندانت جنگی چهار چندانت جنگی جهاز چندانت جن... جنگی چهار ببخشید جنگی چهار میانه برفتی به تنگی سوار به سوگند سوگند فرمایش شا چنین بود آهین و این بود را بسیار بسیار میگه که به وزیرش دست داد تا بگه که ساروانا صد کاروان شطور از دشت دید هیون شطور به حیوان قوی جسته است حیوان بزرگ جسته به خصوص شطور و گاهی هم عصب هیونان به هیزم کشیدن شدن همه شهر ایران به دیدن شدن شهر ایران این منفت ایران به صد کاروان هستور سرخموی همی هیزم آورد پرپاس صد کاروان شفر تیزم ها بردن، نهادن تیزم دو کنگ بلند دو تا کنگ بلند، این طرف این طرف تیزم گذاشتن، شمارش گذر کرد و چونچنگه اینقدر می‌کنید یک شماره نداشت که چقدر بود سه دور از دو فرسنگ هرکس بدید، هرکس بدید چون این جز باید بلا را کردید از دور از دو می می‌دیدن بله رو کلیلش رو باید به دست آورد فرسنگ. چیجونه؟ فرسنگ فرسنگ فاصله بین دو جا رو قدیم با فرسنگ چیز میکردن فرسنگ هم باز چیزش خیلی معیین نیست اما در حدود 6 کیلومتر آره دیگه فرسخ و فرسنگ 6 کیلومتر یعنی نه از ایک همی خواست دیدن در راستی سه کار زن آید همه کاستی چون این داستان سر به سر بشنوی به هایت تو را آگر زن نگردی میگه مرد آزاده به گیتی نکند میل دو چیز پاهم عمر وجودش به سلامت باش دو خارمد. زن نگیرد اگرش دختر قیصر بدن <تصفيق> وام نستاند اگر بحری قیامت اگر بعد قیامت اینجا که در کشور امریکا که اساس اعتبار آدم بر وامش. یعنی <تصفيق> هر چه تحت متوضع <تصفيق> <تصفيق> و زن رو هم می‌بینیم که اولاد آدم چقدر عمل کردن به این نصیحه همه اینه میگن چون نصیحت کردن خیلی آسونه ولی از هر ده هزار نفری یکی شاید این رو عمل می‌کنه برای که عمل کردن سخته با. و حقیقت این است که زن خوب خوبه همینجر که زن بد هم چیزی از زن بد بدتر نیست واقعا خب، ارز کنم که دستور اگر به معنی وزیر باشه که هست مرکب از دو کلمه است یکی دست یکی همون باباره آخرش یکی همون هم دو جور خونده میشه یکی اور خونده میشه مثل رنجور و گنجور و مزدور یکی هم ور خونده میشه مثل تاجور و زره ور و حقور و امثالی به هر اما دست دستم شاید پنجاه تمنی داره یکیش اون میزای کچلوی که زن‌های مرسن خانواده چرخ چرق خیبشون داشتن با دست چرق می‌کردن دیدین، داشتیم کیا دیدن؟ کیا ندیدن، بابا دیگر این میزایی بود، انقدر طولش بود عرضش هم این انقدر یک چینی چیزی پایشان اینی در وجود پنجاز بعد باید بشینم، پشتش ما، رو زمین باید چارزان رو بشینن. مرحوم و خدا، این لغتنامهش رو رو یکی اصلا میزنه استاد منم، تو خونه مرحوم فروزانفر یه رو از این میزا داشت، همینقدی فاهم کاراش بومش کنم این میزو بشین گفتن دست و قدیم یعنی مثلا در دور سلطان محمود اداره که می یه اداره ای یه فرش کرده بود از این میزا بودشته بودن اونجا، از این میزای کچولو هر آدم میومد، اومد می زمین چارزانو یا دوزانو پشت اون میز و کار می کرد دوزانو هم می به خدا پدر من اتا هم, هم اون به چند اینجوری می و من دقیقه نمی و صبح تشم سیزن سا چار دست هست این شستن که اون میز روش دست و دست وزارت یعنی میز وزارت منطقه میزه این و, میزه و دستور،, یعنی دستور یعنی دستور یعنی کسی که پشت اون میز میشینه به معنی وزیر دیگه به دستور فرمود تا, تا, تا ساروان، حیون آرد از دشت صد کاروان شکر بیرد تا ببینیم مثل که قصه داره کم کم جالب داشت که آرش خانم باید باقی چقدر چند بیت گفتی؟ دوزار و به دستور فرمود تا ساروان حیون آرد از دشت صد کاروان هیونان به هیزم کشیدن شدن همه شهر ایران به دیدن شدن شهر ایران یعنی مملکت ایران به صد کاروان اشتر سرخموی همی هیزم آورد پر جو. صد کاروان شطور نه صد عدد شدن صد قطار شطور. نهادن هیزم دو کوه بلند شمارش گذر کرد بر چون و چند یعنی از اندازه دیگه بگی نمیشد عدد حساب کرد دور از دو فرسنگ هرکس بدید چون این جوز باید بلا را کلید از دو فرسنگ می شد دیدهش و کلید بلا رو باید اینجوری یعنی برای اینکه برن و قسم بخورن نا باید یه همچین راه راست داشته همی خواست دیدن در راستی ذکار زنایت همه کاستی چون این داستان سر به سر بشنبی به هایت را گرد بزن زن نگربی. البته طبیعی است که اینجا مراد زنان که انگیز هیچ شکی نیست اما در هر صورت زنان به دلیل محرومیت که از نظر به اصطلاح دست داشتن در مسائل اجتماعی داشتن ناچار بزن کاراشونو با دیلگری و پنهانکاری اینا انجام بدن و این موجه شکایت مردان عقلب شده نهادن برداشت دیزند کوه جهانی نظاره شده همگروه گذر بود چندان که جنگی چهار میانه برفتی به تنگی سوار میگه این دو کوئیزم که دو طرف پتشته بودن وسطش انقدر بود که چهار تا سوار جنگی به زحمت و تنگ همدیگه بتونن از اون وسط ببذارن اون همه ایزم وقتی شعله میزنه و قبضی که باک میاد ممکنه اصلا تمام اون ناحیه وسط رو شعله بگیره کامید به گند پرمایشا چون این بود آین و این بود را و آن پس به موبت به فر چاه که بر چوب ریزن نفت سیاه بیا آمد 200صد مرد آتش به دمیدند گفتی شب آمد به روز نفت میریختند کسانی هم بودند که تخصص داشتند در آتش روختن و آتش زدن که گویا دم داشتن یا وسایل دیگری داشتن به ترتیبین آدش رو باد که این بگیره یک جا و این خورد خورده ایز بخواد تا وقت بگیره طور میکشته و همش مشتعل نمیشده این می‌خواستن میخواستن ترتیب بدن که همش یک باره مشتهل بشه و سیاهش رو از بکسن. بگذرن نخستین دمیدن سیاه شد زدود اول وقتی که دمیدن دود سیاه برخواست زبانه برآمد پس از دود زود زبانه و زبانیه لغت عربی است. عنی لحیب و شعله آتش نخست میدن سیه شد دود زبانه برآمد پس از دود زود زمین گشت روشنتر از آسمان جهانی خروشان و آتش دمان یعنی خشبین سیاقش بیامد به بی پیش پدر یکی خود زرین نهاده به سر سراسر همه دشت بریان شدن بدان چهره خندانش شد گریان شدن سیاقش خندان بود ولی دیگران ناراحت بودند که این جوان محبوب مرد علاقه عموم الان میره در آتش حشیبار با جامعه های سفید لبی پرزخنده دلی پر امید یکی تازی برنشسته سیاه همون اسبی بوده که همباره با سیاهش بوده و اسمش به دلیل هم سیاهی شبرنگ بهش میگفتن یعنی سیاه شبرنگ بهزاد بهزاد هم اسم اسب بوده و همین عصب که کیخسرو و گیف رو به ایران برمیگردونه یکی تازی اسب عربی یکی تازی برنشسته سیاه همین گرد نعلش بر آمد به ما پراکنده کافور برخیشتن چنانچون باید رسم ساز کفن او یا نمیدونم دیگه این فردوسی از چیز ایران باستان میگیره یا از رسم مسلمانی که میدونید که برای مرده مرده رو وقتی کفن میکنن صدر و کافور یعنی خوشبوش میکنن با این مواد پراکنده کافور و پیشتن چنانچون باید رسم و ساز کفن بدان گه که شد پیش کابوس باز فرود آمد از اسب و بردش نماز آخرین احترام رو میذاره، پیاده میشه از از روخ شاه کاغوز کرشه دید طبیگیست سخن گفتنش با پسر نرم دید دید این بار دیگه سیاه باش به دو گفت اندوه مدار که از اینسان بود گردش روزگار زندگی همینه سری فرز شرم و باهایی مراست اگر بی گناهم رهایی مراست میگه این گناه دارم که خب منجزت میرسم این گناه هم ندارم فیز میشم رها میشن هیچ نگهانی نیست بریدون که کار هستن گناه جهان آفرین هم ندارد نگاه به روی یزدان نیکی دهش از این کوه آتش نیابن تبش تبش همون تابشه یعنی تافتن و سوختن خروشی برآمد آمد زدشت و شهر قم آمد جهان را از آن خواهر بروال مردم آراحت بودن هیچ معلوم نبود که از روی این کوه آتش چی بیرون میاد چون از دهشت سوداوه آواشنید برآمد به ایوان و آتش برید آتشی که خودش afروخته بود همی همین خواست طورا بداغیت به روح طبیعی است که می‌خواست یورش بمیره برن که رسوامه شد اگر چیزی همین جا جوشان پر از گفتگو جهان این به کافوس چش زبان پر دشنا دشنام دل پر سیاه بشت کوه آتش به تا نشد تنگ در جنگ آتش به سا زهر سو زبانه همی بر کشید کسی خود و عصد سیاه ندید تمام در شعله پنهان شد یکی دشت با دیدگان خون که تا او سا آتش که برون چون او را بدیدند یعنی بیرون برخاست او که آمد ز آتش برون شاه نو اگر آب بودید مگر تر شدید مگر یعنی شاید زد تری همه جامعه بیبر شدید میگه اگه تو آب رفته بود تر میشد جامعه لباسش کنف میشد چونان آمد از بغبای سوار که گفتی سمن داشت هم در کنار یعنی دود هم حتی جامعه سفید او رو سیاه نکرده بود مثل اینکه رفته در سمنذار گل یاسمن در کنار داشته و این به یاد میاره که در مورد ابراهیم هم گفتن وقتی به آتش انداختن رو آتش بر او گلستان شد البته اونچه در قرآن هست اینه که آتش رو عمر کرد این خداوند عمر کرد که سر باش نسبت به ابراهیم ولی گلستان نیست ولی اینجا بگی که مثل اینکه که از باق آمده بیرون تو بخشاهش پاکی از دان بود، دم آتش و آب یکسان بود چون از کوه آتش به هامون گذشت، خروفیدن آمد سه شهر و زدهشت سواران زلشگر برنگیختند، همه دهشت پیشش درم کردند نسا کردن در یکی شادمانی بودند در جهان، میان کهان و میان میان همیداد مجده یکی یادگر که بخشو بر بیگنن دادگرمان در تنها کسی که ناراحت به نگرانه طبیبی سودابه است همین که سوداوه از خشم موی همین ریخ آب و همین رو چو پیش پدر شد سیاه پاک نه دود و نه آتش نه گرد و نه خاک فرود آمد از از پاوز شا پیاته سپه بد پیاته سپه سیاه را تنگ در برگره ذکر داره بعد پوزه شندر گره سیاهاش به پیش جهاندار پاک بمالی بیامد به مالی رفتها به پاک سجده کرد که از طب آن کوه آتش است همه کامه دشمنان گشت پست کامه یعنی کام یعنی مراد آرزوی دشمنان بر نیامد به دو گفت شاهی دلی رو جوان که پاکیز تک میدید و روشن ببان خونک آن که از مادر پارسا بزاید شود بر جهان پاک شاید که مادرش پارسا سا باشه به ایمان و بینش از شاد کلاه کیانی به سر برنهاد می آورد و رامشگران را بخاند همه کامها با سیاهش بران سه روز در آن سود می میکشید نبود در گنج بند و کلید. در حقیقت یعنی نیکوکاری کردن و به مردم بخشش کردن بابت اینکه که بلایی ندیده به تخت مهی برنشه گرزه گاه فکر به دست شد دو سودابراف گذشته ست سخن‌ها فراوان بران که بی شرمی و بدتنی کرده فراوان دل من بیازردی چه بازی نمودی فرجام کار که با جان فرزند من زینهار بخوردی و در آتش انداختی زینهار امانه و زینهار خوردن یعنی امان رو شکستن یعنی فرزند منو به خطر انداختی و او رو در آتش انداختی بر این بونبرج جادویی ساختی نیاید ترافوزش به بکار بپرداز جای و برارای دار میگه دیگه حالا معذرت نیست و برو جارو خالی کن و آرایش دار بشو یعنی دارت میزن نشاید که باشی تو اندر زمین جزاویختن نیست پاداشه به دو گفت اگر سر به باید برید مکافات این بد که بر من رسید بفرماید من دل نهادم برین، نخواهم که باشی دل از من بکین سیاوش سخن راست بود همین دلشاه از آتش بشوغت همین تو میچینه که بله سیاوش راست میگه نمیذانم من نمیخوام پادشاه نسبت من کین داشته باشه ولی اینا اثر جادوی زاله همه جادوی زال کردن در این نبود آتش تیز با من به کین میگه آتش با من به نبود آتش زال این کارو کرد دو گفت نیرنگ داری هنوز مگر دست همین پشت شوخیت کوز، شوخ، یعنی بیشرم و بیحیا میگه پشت بی تا هنوز خمیده نشده یعنی بازم روتو کم نمی کنی به ایانیان گفت شاه جهان که این بدکیم ساخن در نهان چه سازم که باشد مقافاته این همه شاه را خاندن دافریم که پاداش این آن که بیجان چود زبد کردن پیش پیچان شود پرسید من این چیکارش بکنم گفتم چیزش مجازاتش قد به فرمود که این را به کوی زده آویز و برتاب روید چو سوداغه را روی برگاشتند یعنی روش رو که ببرند شبستان همه بانک برداشتند دلش آخ پر درد شد که کاغوز دوستش داشت زنم از مکارگی دست برد نمیداشتی نهان داشت رنگ روخش زرد شد سیاهوش چنین گفت با شهریار که دل را به کار غمدین مدار به من بخش سودا و راز این گناه پذیرت مگر پند و و راه این به مقتضای انسانیت و به مقتضای آقایی و نیکفترتی خودش عمل می کرده اونم به مقتضای بدجنسی خودش همی گفت با دل که در دلش این طور می گفت همی گفت با امی گفت با دل که بعد دست شاه گریدون که سودا به گاز به فرجام کار پشیمان شد بعد می که زن عزیزمو از دست دادم در اثر چیز این بچه ز من بیندان غم چو پیچان شود بعد چی میکنه فکر کنه که من باعث شدم با همه همینجاستادم کاپ شاه بدان تا ببخشت گذشته گناه میگه شاه هم منتظر یه ای بود که او رو ببخشه سیاوشا گفت بخشیدمش از آن پس که خون ریختن دیدمش یعنی سلاح دیدم که خونشو بریزند ولی بخشیدم سیاهش به اوسید تخته پدر، در اوزان تخت برخواست و آمد به در شبستان همه پیش سوداقه باز دبیدند و بردند یک فکر نماز شبستان یعنی زنانی که کنیزان و خدمتگاران خود سوداقه بودن و در حرم بودن تبیز که آدم های بودن علاقه بشتشتن برای نیز بگذشت یک روزگار مدتی بگذشت بر او گرمتر شد دل دوباره بلدم سنادی که چه بکنن؟ یه کم کم دل پاچهان رو گرم کرد چنان شد دلش باز خور مهر اوی که دیده نبرداشت از چهره او. دگر با شهریار جهان همین جادویی ساختن در نهان ولی خب ذاتش بد بود دوباره شروع کرد به بردجنسی کردن بدان تا شود با سیاه بعد بدان که از گوهر بود سزد اما توش که ذاتش اختضام کرد شروع کرد به گفتار او باز شد بدگمان نکردی ایچ پرکست پدیدان زمان میگه در نتیجه گفتن به باز به سیاهش بدگمان شد ولی حرفی به کسی نمیزد در این واقع به جای که کاری چون این افتاد خیرت باید و دانش و دین و داد وقتی چنین چیزی بشه چونان چون گفت مردم ترسگار برای به کام دل مرد کار به جامی که زهر کند روزگار از او خیره نوشه مکن خواستار میگه جامی که روزگار داری زهری تو از شیرنی نوش اصل نخواه جام زهر این دست تو دادن تو با آفرینش پسنده نی یعنی از عهده آفرینش بر نمیای من اگر پرورنده نی اگر تو پرورش نمیدی خودت عصبانی دیگه یعنی نشو چون این از کردار گردان سپه نخواهد گشاهدن همی با تو چه برای این داستان زد یکی رهنمون که مهری فزون نیست از مهر خون چون پرزند شایسته آمد پدید زه مهر زنان در به رابط برید اگر پرورشش نمیدی سیاه شد چرا خشبگی بشمشید کسی اینطور مثال زد داستان مثال اینطور یه رهنمون یه راهنمای مثال زد که مهری از مهر خون بالاتر نیست و اگر شایسته ای داشتی باید از مهر زنان ممکنه تو رو برگردونن از راه دوستی فرزندت و از مهر اونا دل ببری و این کار کابوس هیچ وقت نکرد و صدابه موند و فتنگیزی ها رو کرد تا پس از مرگ سیاهش روستم آمد و او رو از حرمسرهای کابوس پیون کشید و خوش.